سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی تزکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه السلام جلسه دهم ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما الله فی الاردین اللهم انت السلام و من که سلام و لکه السلام و الی که یعود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا يوحنا و رحمت الله و برکت. السلام على الأئمة الهدين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله و, و ملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبیين السلام و جعفر ابن محمد, محمد بن صادق السلام و موسی بن جعفر الکاظم السلام و علی بن ابن موسی الرضا السلام و محمد ابن علی الجباد السلام و علی بن ابن محمد الهادی السلام و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری السلام و علی الحجت ابن الحسن القائم قال الله تعالى في كتابه ونفس وما سواها فعلها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكیه نفس عرض شد که رشد نفس تعالی نفس تکامل نفس است که لازمه این تعالی شناخت عوامل رشد دهنده نفس و تقویت اون شناخت عوامل در زننده و بازدارنده نفس از تکامل و کنار زدن اونها یعنی لازمه تزکیه نفس که رشد و تعالی نفس است پاکسازی نفس برای این منظور یک کار نظری احتیاج داشتیم که طلم کشید برخی از حضوری یا با نامه به من یادآوری کردن که ما در بحث نظری شاید زیاد بحث کردیم و بحث عملیش رو عقب افتاد. قبول اولا این جور بحث ها واقعا فرصت میخواد. فراغتی میخواد مبسود آدم وقتی شروع میکنه بتونه جوانه به لازم بحث رو بررسی کنه بیاد جلو. اون بحث نظری رو که ما شروع کردیم عملا میدیدیم اینجاش هنوز نقص داره اینجا هنوز کم بود اینجا هنوز یه تذکر میخواد. اینه که در حال یه مقداری از رخت رو گرفت. هنوز هم از نظر خونده بنده بحث نظریش همون نشده. ولی چکمان امشب بحث عملیش رو رض میکن. انشااءالله دری پر سطهای دیگه اگر خدا خواست، باز بازخوااستیم در این زمینه بحث کنیم. اون مطالب مربوط به بعد نظریش رو تکمیل کنیم این مثالی که عرض کردم اگر میخواهیم راننده بشیم هم یه مقدار اطلاعات نظری میخواییم هم تمرین عملی حالا ما میخواییم نفسمون رو رشد بدیم تکامل پیدا کنیم بریم بالا انشاءالله از جهت نظری حرف چند شب قبل کافی فعلا. خدا ما را چه گناه است چه مقاماتی ما میتونیم پیدا کنیم ما کجا برای چه اصلیم کجا باید بریم چه باید کرد راهنما پیدا کنیم این فکر اینا همش قبول خب الان میخوام شروع کنم از کجا شروع کنم یکی از مشکلاتی که در همه ادیان وجود داره در اسلام هم پیدا شده در همین قسمت عملیه یا افراد یا تفرید یعنی یه عدده پیدا شدن در ادام اگر فرصت کافی بود با مدرک دقیق رو کتابا می آوردیم می خوندیم اما دیگه اگه بخوام اونجوری وارد بشم بازم می گید که هم که این دوشبی هم کهمون تو بحث عملی کم بحث شده. اجمالا ارزون کنم اما مدرکش رو اگر در یه فرصت های مبسوطی بنا شد بحث کنیم ارائه میدم خدمت رو. یه عدداه اومدن همه ادیان گذشته هم بوده تو اسلام هم هست اقا دلواد پاکوش قلب باید با صفا باشه حالا نمازم خوندی نخوندی حالا روزم گرفتی نگرفتی حالا یه بیدقی هم تو بعضی جنبه های عملی داشتی در دنیای اسلام حتی برخی آمدن این رو متاسفانه به آیات قرآن هم نسبت دادن مثلا این آیه شریفه شاید شما برخورد کرده باشید و شنیده باشید میگن قرآن کریم فرموده از وعبد رب بکر حتی یعطی یکل یقین <تصفيق> سعب و درب بکن عبادت کن پر در دوارتون نماد بخون روزه بگیر عبادت داشته باش حتی یعطی یکل یقین تا به یقین برسی خب حالا اگر من به یقین رسیدم پس دیگه عبادت لازم نیست دیگه خب من به یقین رسیدم این مشکل رو از یک طرف دل پاک باشد قلب باصفا باشد ما با دل این مطالب رو پذیرفتیم حالا حتما دولاراس شدن میخواد یا نه حتما گرسنگی کشیدن میخواد یا نه هم تو دنیای اسلام ما این مطرح شده متاسفانه هم در ادیان قبلی هم نوعا پیروان ادیان به دو دلیل این حرفا رو زدن یک یه عده کج فهمیدن مغرز نبودن آدمای لجبازی نبودن فهمشون این بود، خیال کردن اینجوریه، لذا دامن زدن یه ادله ایران پیرو و خودشون کردن این اشتباه رو تو جامعه ایجاد کردن. یه ادله دیگه نه، هیچ فهمشون نبوده، حالا اشتباه این آیه معنیش این نیسته، همی بارید میشم و بخوای شو شبه نکنم، این آیه و ابد رب به که حتیات یکالیاقی، اле ارز میکنم منش چی اصلا؟ <تصفح> یک ادله چه فهمیدن اشکال درست کرده، یک ادله مغرز کج نفهمیدن اینا تنبلی میکردن حال عبادت رو نداشتن خب زحمت داره آخه بالاخره باید مثلا صبح از کابش بزنه پاشه نماز به خونه رو نگیره تحمل کنه روزه بگیره خمس اگه بده بالاخره مال دیگه گو در راه خدا یه مقدار کمک کن گو جان نیست که راحت توانش داد خب مال هست مگه بیراحتی میشه از اون چشم پوشید خب اینا رو میاد آهای آه حرفا چیه خدا که احتیاج به نمازمان داره لذا زی قید عبادت رو میزن. این مشکل از یک طرف که ما در دنیای همه ادیان داشته ایم که در اسلام هم پیدا شد از یک طرف دیگه کسانی هم پیدا شدن گفتن که ما در عبادت باید مثلا فرض کنیم حالا که بناس نماز بخانیم اونقدر نماز بخانیم اونقدر به عبادت فردی خودمون توجه کنیم که کوچکترین توجهی به مسئولیت‌های دیگه دیگه بر ما مطرح نباشه من اینم که در زمان امام صادق علیه السلام رخ داده بگم این در کتاب اصول کافیه شخصی اومد خدمت امام صادق عرض کرد ابن رسول الله همسایه من یهودی بود تحت تحصیل من قرار گرفت مسلمان شد قیده با شما شد حضرت سرمود خواه وضائفش رو کم کم بهش یاد بده. چندی بعد اومد خدمت حضرت گو آقایشون برگشت حضرت سرمودن به این زودی گو آخر من بنابود وضائفش رو بهش یاد بدم خیلی بد فهمی چقدر بده کچ فهمی چقدر بده این دقت داشتن تو مسائل گو آقا من مخواستم رو یاد بدم خب ایشون گفت من که تازه مسلمونم به من بگوچ کار کنم. من صبح زود رفتم در زدم. آقا پاشو نماز صبح بخونه. بیچار بیچاره پاشو اومد و نماز صبحش رو ما خوند. خب کار چیکار کنم؟ مستحب تعقیبات داشته باشیم تا موقع آفتاب مکروحه که بخوابیم. بله برای بله کسانی که روش کرده خوبه. اما یه اف... حتی بچه گاهی تو پرانتز هم اینجا بگیار. تو حرم امام رضا علیه السلام بالا سر داشتم خیلی سال قبل. نماز می‌خوندن. یه آقای اومد دست بچه‌ی خردسالش رو گرفت. نشون ایستاد و نماز بخوند. نمازمون وقتی سلام داد نگاه بچه به پدر این رو نشون می داد که مثلا من خواستم بریم حالا ولی چیزی نگو پدر پاشد یه دو راکت دیگه نمازمون سلام داد بچه گفت که خسته شدم یه تشرب شرب بشی دو راکت دیگه این دفعه بچه گفت خسته شدم یه سری زداره گوش بچه که من یادم میاد بابر کنیم مثل اینکه این درد رو خودم حس میکنم ایشون که نماز دو رکعت خون سلامدار من یه جوری وارد شدند برای علی سیلی به مام نزنه آقا تقبل الله قبول نمازتون قبول حاج آقا از کجاستی باوردید بعد گفتم آقا فکر نمی‌کنید بچه تحمل نداره این گناه کرده این که الان ظرفیت نداره اینجا بشینه انقدر تو نماز مستعبده می‌خوای بخونی بچه‌رو به سر کار کن بیا بشین هرچی دلت می‌خواد نماز بکن این نخیر آقا مکروه تا آفتاب شما بخوابید خب نشون نشوندما تا دم آفتاب تقریب نماز نمازستون حالا اومد بر یه سبونی مختصری خورد آ بریم یه سری مستحبات دیگه واسط روز نافله ظهر بخونیم نماز ظهر و عصر و نصف شب هم رفتم چیدی نخوابیده بود پاشو نماز شب بخونیم چند روز بعد اومد با خداحافظ من نیستم این عینن تو اصول کافی ساز میکنم عینن تو اصول کافیه حدیث تو اصول کافی داره نقل حل میکنه یه عده پیدا شدن گفتن عمل آی چیه دل پاک باشه. یه عده پیدا شدن این کارو کرده. این افراط و تفریق در هر کاری بیچاره کننده است. اول ما در این سراغ اصل دین نسبت به اصل عمل چی گفتم. من اجازه بدید یه تو روایت بخونم از خودم نگم. یک از امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام در اصول کافی فرمودنی که عالم الله از لوجه خدا فرموده است. میدونید اونجایی که خدا به صورت وحی قرآنی فرموده آیات قرآن اونجا که به صورت وحی قرآنی نباشد چیه حدیث قدسیه این حدیث قدسیست خدا فرموده است ابن آدم ای بنی آدم اجتنب ما حرم تو علیک اجتناب کن از اون چه که من بر تو حرام کردم تکن منعوره ناف تا از با ورقترین انسان ها بوشی پس در این روایت چی لازمه اجتناب از اون که خدا حرام کرده یعنی اگه خدا گفت اینه نخور باید بگی چش، اگه خدا گفت دروغ نگی باید بگی چش، اگه خدا گفت نگاه به نامحرم نکن باید بگی چش. اینجا جنبه اجتناب را از اونچه چه که خداوند حرام کرده روش خیلی تاکید داره حدیث دیگری از امام باغر علیه السلام خیلی زیبا الامور و سلاستون امور به طور کلی کارها سه بسمه امرون بینون رشته سیو تبع. یه است که راستیش درستیش مورد قبول خدا بودنش این کاملا بینه پس باید تبعیت کنید یعنی معلومه که خدا اینو میخواد خدا اراده کرده که این کارو ما انجام بدیم پس اینو باید تبعیت کنیم و امرون او قیهو تنب یه اموری هم هست که بین روشنه که اینا زشته اینا ناپسنده اینا رو خدا نمیخواد پس از اون باید چی بشه؟ تنب باید اجتناب بشه و مشتبهاتون بین زالک یه امور بین این دوتا هست که تو جوری ناک نمیدونم خدا واقعا این رو میخواد الان نظر خدا چیه من کار انجام بدم یا اینکه خدا میگه این کارو نکن این مشتبه بر من شبهناکه و من ترک شبهات نجامن المحرمات اون کسی که در امور شبهناک گیر کرد ترکش کنه که حالا توضیحش رو ارز میکنم این نجامن المحرمات از حرام ها نجات پیدا میکنه و به شبهات وقع افل محرمات اون کسی که مرتکب شبهناک ها میشود او ناخداگاه گرفتار حرام ها میگرده می افته تو دامن محرمات و حلکه من حیث و لا یعلم حلاک میشه بیچاره میشه از طریقی که لا یعلم خودشم نمیدونست چی شد چرا من اینجوری شدم مثلا بعضی وقتا هست میگه آقا دلم تاریک شد آقا یه حالت سنگینی پیدا کردم یه حالت بیرقبتی دیگه به بعضی مسائل ارزشی پیدا کردم حلک من حیث و لا یعلم حلاق شد از طریقی که خودشم نمیدونه این دوتا روایت رو خوندم بذارید یک روایت از مولامون من امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم ایست روایت با هم دیگه حالا روایت دیگه هم هست جنبندی فیلن بکنیم با توجه با اون آیه ببینیم مثلا اسلام و اعمه خدا علیه السلام سلام نسبت به عمل نسبت به عبادت چه نظری دارند؟ اون تندروی از یک طرف این کندروی از یک طرف بینش مکتب اعمه خدا علیه السلام که گونه است این حدیث امیر المعنی علیه السلام رو دقیقه فرمایید <تصفح بال> <تصفح بر> اِنَّ, <cassette> <تصفح> ان اللَّهَ و وَ لما خلق خَلَقَ خَلْقَهُ خداوند بزرگ وقتی که خلقش رو خلق کرد، مخلوقش رو آفرید. با قرینه ای که بعدش داره معلومه که منظور از این خلق یعنی ما انسان ها چون صحبت عقل است و صحبت عمل است و صحبت اختیار این درخت اختیار نداره. خلق خداست اما اختیار نداره. این تریبون و اون حیوان قدرت انتخاب خوب بشه بد بشه نداره. پس از این خلق منظور انسانه. ان الله اللَّهَ و وَتَعَالَىٰ لَمَّا خلق خَلْقَهُ ارَادَ اَيَّكُونُ وَعَلَىٰ آدابٍ شریفه و اخلاق رفیعه خدا اراده کرد خدا خواست که این مخلوقش از نظر اخلاقی خیلی عالی باشه اخلاق بلند آداب افزنده و مشی خیلی عالی پیدا کنه خب این اراده اراده جبری کنی چون اگه خدا جبری بخواد هرچی بخواد ما همونیم دیگه یعنی خواسته به گونه ای که راهش رو ما نشون بده آی بنده من من دلم میخواد تو اینجوری باشی اینجوری باشی اینجوری باشی راهشم اینه اگه قبول کردی میشی اگه نکردی نمیشی حالا راحتم بهت نشون میدم همونطوری که در قران میفرماید انا هدینا السبیل اما شاکران و اما کفورا من راه رو نشون میدم میخوای شاکر باش میخوای کفران بکن نپذیر ان الله تَبَارَكَ و تعالی لما خلق خلقه اراده يَكُونُ و علا آداب نرفیعه و اخلاقن شریفه و علم لم یکونو کذالک و دانش خدا پروردگار عالم این رو میداند که لم یکونو کذالک اینجوری نمیشه یعنی این انسان و اون قله رفی اخلاق نمیرسه یه آدم بلند مرتبه نمیشه الا بعن یعرفهم ما لهم و ما علیه مگر اینکه خداوند به او معرفی کند به او بشناساند یاد بدهد چه چیزهایی بر لح او چه چیزهایی بر علیه او له او و علیه او یعنی چی یعنی بایدها چیه نبایدها چیه چه کاری رو بکنه چه کاری رو نکنه یعنی عمل دقیق داشته باشه از چه چی چیزایی اجتناب کنه از چه چی چیزایی باز چه چی چیزایی رو مقید بشه و تعریف لا یکون الا بالحلال و الحرام فرمود این معرفی کردن این شناسوندن این تعریف نیست مگر همون حلال و حرامی که خدا قرار داده یعنی اگر خدا گفت این حلال است یعنی بشر برای این اینکه بخوایی به اون قله رفی برسی باید و اگر این حرام است یعنی اگر میخواهی رشد کنی این کار نباید خب این دو ستاره باید کنار هم چی نشون میده اگر رشد ما میخواییم عمل باید داشته باشیم یه هایی برای ما مطره یه نبایدهایی مطره میاییم سراغ سیره اعمه حدا علیه السلام. خود پیغمبر و اعمه نسبت به عمل و عبادت چگونه توجه داشتن اگر بنا بود فقط دل پاک باشه کافی باشه کدام دل از دل امیرالمومنین پاک تر چرا در سهر نوزده رمضان هم نماز رو ترک نکردند اگر معنای و که ربک حتا یات یکلیقین به این معنی باشد علی به یقین نرسیده بود که نماز بخون در حال نماز شهید شو امام حسین علیه السلام در روز آشورا حتا درون شرایط کذایی نماز رو ترک کردن یا نماز خواندن امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی امام باقر از دنیا رفتم از صحابی میگرفتم خدمت امام صادق من تو شهر مدینه نبودم بیرون بودم اومدم رفتم خدمت عزاد و حضرت تسلیت بگم گفتم خیلی دلم می‌خواست موقع از دنیا رفتن امام باقر منم مدینه بودم حالا آقا چه سفارشاتی فرمودن به ما بفرمایید امام صادق فرمودن که فلانی پدرم موقع دادن دستور داد همه بستگان ما رو دعوت کنند. همه رو دعوت کردن نشوندن فرمودن بدانید شفاعت ما شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نه اینکه نخواند. فرق دارا سبک شمردن با نخوندن فرقش چیه؟ نخوندن تاریک و سلاته. نماز نمیخونه. صباخ میشموره یعنی الان اذان ظهر گفتن بیکارم هست تو خونه کاری هم نداره تا غروب آزادم است میگه حالا که وقت داریم حالا بعد نماز میخونه این صبح شمردنه این ارزش برای نماز قائل نشدنه یا مثلا نماز داره میخونه الان رو به قبلی ستاده الله اکبر باستینه لباس رو بالا پایین میکنه بدنش رو میخارونه لباسش خیصه داره تکم میده توجه نماز نداره همون قضیهی که پیغمبر تو مسجدش فشتن یکی از راه رسید چنان دولار شد به سرعت که ازت فرمود این مثل کلاقی که میخواد مثلا یه دونهی ورداره داره سرش میده این اگه در این حال بمیره تارک صلات حساب میشه بعد حضرت اینو فرمودن این روایت این که از میکنم روایت میگم فرمود اگر نماز در دلش رفته بود در اعمالش در اندامش هم نشون داده میشد این تقدم بحث نظری نسبت به عملی اینجا دقت بکنید اگر نماز در دلش رفته بود خب این دستش این سجدش این ذکرش بقیه تاثیر تأثیر خب پس اگر بناس عبادت کنید خدا را تا به یقین این یقین به این معنی باشه پس پ نعوذ بالله خلاف قرآن عمل کردن دیگه اولا ببینید میگه حتی یک کل یقین یقین به شما برسد نه شما به یقین برسید این یقین یعنی مرگ یکی از نامهای مرگ در فرهنگ دینی یعنی یقین چرا؟ چون حتمیه قطعیه <تصفح> هیچ تردید فجیر نیست میگه تا دممت خدا را عبادت کنی پس اصل عبادت رو قرآن گفته تا مرگ باید عبادت کنیم و همین جهت پیغمبر تا دم مرگ عبادت کرد علی تا دم مرگ عبادت کرد همه امامان دیگه ما روز آشورا نمونه بارزش ابی عبدالله در اون شرایط هم نمازش رو ترک نکردن پس این نمیتونه به این معنی باشه که آقا ما عبادت نداشته باشیم، ما عبادت قطعا باید داشته بوشیم عبادت عملی برای حرکت به سوی اون تکامل و تعالی ارزنده است لذا ما اگر میخوایم عملا در این زمینه تمرین عملی داشته باشیم مثل همون بحث رانندگی که تأکید میکنم بنده میخواهم رانندگی یاد بگیرم، راننده بشم. آقا یه اطلاعات کلی راجب رانندگی پیدا کردم. اما الان وقتی در بغل کسی میشینم شروع می کنم نرم نرم رانندگی کردن. این نرم نرم در فرهنگ دینی ما به چه صورت گفته شده؟ یک مقید بودن به واجبات. انقدر سفارش شده اون مسئله یه شبهاکین حال توضیش رو عرض میکن و چون اول امور و صل و یه نان رشد این در واقع به وااجبات برمیگرده. یک اون که, که ما در قرآن می بینیم ببینید قات عرض می کنم. ممنونم میشم نظراتون رو بفرمایید استفاده کنیم اشکال به نظرتون میاد مطرح بفرمایید <تصف> گفتشونو داشته باشیم قران. روایات خود سیره عملی مصرومین علیه مسلم استدلال عقلی هم که الان روش خواهیم داشت انشالله به اندازه این دو شب ما در این که انجام واجبات را اگر کسی میخواهد رشد کند باید مقید باشد هیچ مولا درزش نمیده در فرهنگ دینی ما یعنی هر کسی در هر جای عالم پیدا بشه به ما بخواد بگه که آقا حالا شما بعضی واجبات هم ندیده گرفتید ندیده گرفتید محال تذکیه نفس روش. من خدمت دیگه حالا این چند شب نمیدونم چی شد یه چیزایی ما گفتیم خدا میدونه بعد از صحبتگاه خودم خودمو سرزنش میکنم خیلی حرفا چی بود تو ولی دیگه حالا باد آباد دیگه اینم اومده بزا بگم خیلی از بزرگان رو من خدمتشون رفتم زانو زدم حرفاشون رو کردم، مطالبشون استفاده کنیم ببینیم چه میشه یه شب نمونه گفتم از اینجا تا تبریز رفتیم یه نفر رو ببینیم والله قسم کسی غیق قسمه تمام اونایی که بعد از مدتها حس کردن به یه جایی رسیدن حرف نیست تبلت کالی نیست اینا کسانی هن نه تنها به واجبات مقید بودن به مستحبات هم مقید بودن خدایا تو شاهدی من با قسم می یعنی جری بگم ببینید آقا بعضی وقتا دیده میشه خب جوانا عشقی دارن، حالی دارن، ای دارن، ما سیر و سلوک می‌خویم، ما ذکری می‌خویم، ما یه وردی میخوایم میخوایم چله بگیریم، می‌خویم مثلا حیوانی رو 40 روز نخوریم، میخوایم چی میخوایم اینا همه در جای خودش یه بحثایی است، در جای خودش محفوظ. اما اگر کسی به واجباتش مقید نشه این امور ممکنه یه قدرت بده اشتباه نشاه اما قدرت‌ها ها قدرت های شیطانی میشه گول نخوریم شیطان گاهی خود از این طریق ما رو بفریبه. <تصفح> اجازه بدید نه یا مثال بزنم یه شب اشاره زمنی کردم خدمتون فرق تزکیه نفس با تقویت نفس آیا اگر بنده ذکری بگیرم یه وردی بگیرم به یه شکل خاصی ریاضت بکشم؟ طبق نظامی که خدا در این عالم قرار داده اثر وضعی خودش رو میبخشه یا نه خب بله اثر وضعی میبخشه دلیلش اینه که مرتاض بودایی یه کارای خارق العاده انجام میده که منو شما بلد نیستیم هست یا نیست اینکه مرتاض بودایی، مرتاض مسیحی مرتاز یهودی مرتاز سنی مرتاض شیعه اگر نفس این قدرت نمایی ها حق بود هم شیعه هم سنیه هم بودایی هم یهودیه هم مسیحی هم مسلمونه قدوم یکیش هده اگر بنا بود مثلا فرض کنید اینان من مثال تو عالم علوم ظاهری بزنم در علم پزشکی علم پزشکی ما چهار تا دانشجو داریم یکی یهودی یکی مسیحی، یکی بودایی پنشتا یکی شیعه شکی سنیه این پنج تا دانشجو پنج مذهب مختلف پنج باور مختلف پنج اعتقاد مختلف پنج سبک مختلف اما هر پنج تا یا خوب پزشکی درس می خونه پنج تا پزشک خوب میشه یا دو تاشون پزشکی خوب میخونه اتفاقا دو که خوب میخونه یکی یهودیه یکی مثلا سنیه این شیعه اصلا پزشکی خوب نمیکنه اون سنی اون یهودی پزشک لایق لایق این شیعه اصلا تو پزشکی چیزی بلد نیست این دلیل میشه که یهودی حقه این دلیل میشه که سنی حقه یا حتی برعکسش بگم اگر یک شیعه اطلاعات شیعه هم نداره شیعه شناسنامه‌ایه حالا مثلا نمازشم نمیخونه روزشم نمیگیره خوب رفته پزشکی خونده پزشکی لایق شده یه دانشوی پزشکی بودایی خوب پزشکی نخونده لایق نشده من میگم ببین حق با شیعه بود که این شد این درست اینه این مثلا همو مقوله اسلامیشون سنی شیعه بحثشون شد جایی که منطق نباشه سنی برگشت گوه آقا میدونی چرا شیعه حق نیست برای اینکه شیعه اول شین داره شیطانم اول شین داره پس شیه حق نیست سنی هم برگشت شیه هم برگشت گوه آقا میدونی چرا سنی حق نیست چون سوس اولش سین داره نه. آخه این حرف شد آخ این حرف شد این جدن مستخرس آدم بخواد تو دنیای فکر تو دنیای منطق تو دنیای علم تو دنیای استدلال به این حرفا متمسک بشه این نشون میده که طرف فکر نداره طرف اطلاع نداره نه چون شیطان اولشین شین داره شیام اولش شی عباته و نه چون سوس که اولش شین داره اومد این حرفا مسخره با است استدلال باید دید اینجا ما میایم بر این اساس میایم با دقت روی این مسائل با رد بشیم نمیخویم جوری حرف بزنیم و بریم کنار اگر ما به بحث عمل بو عنوان یک اصل تکامل بخش نیاز داریم اینو دقت بفرمایید یه ادمیام ریاضت میکشن حالا چله میگیرن حالا یک رنجهایی هایی به خودشون میدن از یه خردنیهای خودشون خودشونو محروم میکنن هم بودایی به نتیجه میرسه هم مسیحی به نتیجه میرسه هم شیعه به نتیجه میرسه پس ذات به نتیجه یک کارهای خارکل عاده رسیدن این دلیل بر حقانیت نیست چون خدا نظامی قرار داده در این عالم هر کس در هر امری زحمت کشید بی نتیجه نمانه تو پزشکی زحمت کشیدید بی نتیجه توی اون کار ریاضتی هم زحمت کشیدید بی نتیجه <تصفح> بدین جهت گفتن اگر شما می عمل داشته باشید ببینید ما فرهنگی داریم که اومد خدمت امام صادق علیه السلام امام صادق فرمون که این ذکر رو زیاد بگو تا میرسه به اینجا ثبت غلبی علادینک طرف تکرار کرد تا رسید به اینجا گفت ثبت قلوب و ناعلادینک حضرت فرمون همونی که ما گفتیم بگو چی آقا؟ اولا از ذره معنا اگر ما دقت کنیم چقدر فرق میکنه؟ ثبت قلبی علا دینه خدایا قلب مرا بر دین خودت ثابت نگهدار. او گفت ثبت قلوب انا علا دینه دلهای ما را حضرت فرمود همونی که من گفتم بگید و زیاد نکنید به همین جهت شما ببینید نماز صبح رو این دیگه اعتقاد ماست بگه دو رکعت معیم کرده. بنده اذان صبح ها شدن وجود ساختم دو رکعت نماز رو به قبله ازانم نگفتم، اقامم نگفتم. نیت کردم دو رکعت نماز صبح می‌خونم قربان ولی حمدم درست، ذکرم قرائتم رو به قبله بودنم و و پاکی و قسری نبودن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دیگه هیچ مستحباتی دیگه من انجام ندادم. طبق معیار شرع من وظیفه‌مو ولیو خیلی دیگه سر و تهش زدم انجام دادم یا نه؟ که انجام دادم چون اذان اقامه که مستحبه. بعد از سلام علیکم و رحمت الله بقیه مستحفه رو من کارم انجام دادم اما یه وقت ازانم میگیم اقامم میگیم بعد از سلام علیکم و رحمت الله اتفاقا داره که اگر کسی نماز و سلام داد دعایی نکنه حاجتی نخواد خدا به فرشتگان میگیم بنده با من کاری نداره اگه کاری داشت لاقل سر به سجده میگذاشت لذا داره که بعد از سلام لاقل سر به سجده بگذارید چبار بگید شکران شکران شکر. عفوا عفوا عفوا مثلا یکی دیلاغ علی صلوات بفرستید. حالا اینا دیگری است اما اینجا بنده عرض می‌کنم این در حد این دو رکت نماز بنده از قبل از اذان صبح هاشم وضو بگیرم رو با دبلوشین قرآن بخونم. هیچ نماز دو رکعت نخونم. یک کلمه نفوش بدم، نه کنم، نه حرف دیگه بزنم، قرآن بخونم تا افطاب زد. بعد بگم آقا دو رکعت نماز چقدر وقت میگیره دو دقیقه، پنج دقیقه. من دو ساعت قرآن خوندم. قبوله؟ طبق معیارش هم؟ چرا؟ خیرازی داره اگر عقلی بخوایم بهش توجه کنیم یا اونی که فرمان به این عمل داده او را آگاه، او را عالم، او را حکیم قبول داریم یا نداریم اگر نداریم چرا میخوایم به فرمان او لباس عمل بپوشانیم اگر حکیم میدانیم چرا اونجوری که او گفته ما از خودمون کم زیاد میکنیم بنده به یه مراجعه میکنه میگه آقا شما انتیبیتیک باید بخورید و حتما شماره انتیبیتیک هم این باشه هر شش ساعت هم یه دونه بخورید میگم خب چهار شش تا 24 تا بنده 4 تا رو یه دفعه دم افتار میخورم میگه نخی خیلی بیچاره می‌کنی خودتو میگم چه فرقی می‌کنه شما میگه یه دونه آلا بخوری یه دونه شش ساعت دیگه من الان دو تاشو میخورم میگه آقا جون اگه منو قبول کردی اون درسی که من خوندم زحمت که من کشیدم تجربه‌ای که من کردم باید اینجوری پیاده کنی ما اصلا دین رو برای این قبول کردیم که عبد خدا بشیم. لازمه عبد خدا بودن اینه که خدایی هستی تو میگی من بگم چشم او میگه صبح دو نماز بخون گوه آقا داشت مسافرت میدم از چار فرسخم گذشت شرعی نماز چار رکتی رو چار رکت خون گوه آقا نمازت غصره باید دو رکت بخونی گوه ای بابا هستی بیشتر بهتر گوه خدا گفته نمیخوام گوه من پای عبادت که به میام بیادی خدا هم سرم نمیشه خو عبادت نیست معنای عوادت و بندگی اینه خدا یا تو میگی دو رکت نماد چاش من دو رکت منتا اضافه میخوای بخونی گفته مستحبات چقدر دقیقه میگه شما بدعت رو یک ذره حق ندارید بدعت از خودتون جعل کنید اما اونی که خدا گفته انجام بده مثلا نماس رو دو رکت باید بخونی حالا آقا من دلم میخواد بیشتر عبادت کنم انقدر برای ما دستور عبادی دادن انقدر دستور عبادی دادن که تو مستحفات حالا میام ارزم کنم پس اولین قدم حرکت به سوی تکامل به صورت عملی مقیده به واجبات شدن مقیده به واجبات شدن ما تا واجبات رو مقید نشیم حساسیت نشون ندیم دقت در انجام واجبات برای ما مدوح نباشه بنده. روزی صد هزار ذکرم بگم, بگم. اون ذکر جای خودش اثرش هم می میبخش داشتباه نشه اون ذکر اثرشو میبخشه اما اون تعالی را که امیر رشد یافته در مسیر الهی میگه و تعریف لایکون الا بله حلال و الحرام اونو من انجام ندادم پس طبق معیار شرعه وسیره معصومین علیه السلام در اولین قدم مقید به واجبات شدن که شدیداً به صورتی انسان مقید بشه این امام مجتبی علیه السلام میگن وقتی ازان میگفت رنگ حضرت زرد میشد وقتی میومد تو محراب واسه برای نماز تمام بدن حضرت میلرد وقتی عرضه می داشت یا محسن و قد اتا کلمسی انتلمحسن و انلمسی می داند بدن حضرت داره می لرزه. این امام صادق علیه السلام توی شجره داره محرم میشه لبیک یه لب یه یکیش رو حضرت نمیفرمود. یکی نزدیک شد آقا لبیک نگید حج شما درست نیست می به آقا یاد بده فرمود می دونم اما نمیتونم بگم لبیک نکنه ندا بیاد لا لبیک و ولا سعده ای. این قیودات و این حساسیت نشون دادن و تمام اصحاب برجسته اعمر رو رو شما دقت کنید آقا سلمان کمیل جابر جعفی قویس قرنیه، میسم تمار اینا چقدر نماز میخوندند چقدر قرآن میخوندن حالا قرآن جز مستحبات بعد ارز میکنم اول واجب اینا نسبت به انجام واجبشون خیلی شدید مقید بودن لذا قاطعانه ارز کنم فرصت که زیغه میخوام فشر درد بشم کسی تعالی روحانی پیدا نخواهد کرد به معنی که ائمه میخوان ممکنه مثل مرتادان هند قوی بشه ممکنه مثل مرتازان بودایی چیزایی پیدا کنه من اینا رو مرکر نیستم همین الان توی همین منطقه ما کسانی هستن که اصلا اعتقادات شیعه من و شما رو ندارن شاید بعضی شما دیده باشید در اثر بعضی از ریاضت ها کار به این ور شکم میزنه این ورشکم شکم در میاره هیچ شان نمیشه من به چشمم دیدم طرفو نشونده کار به گذشته بالا سرش با چکشونقدر زده زده تمام کار فرو رفت بعد در اومد هیچ چیزی این هم اون کارایش که مرتضای هندوام میکنه اگر مسیرتون استاد به هند بارها بنده گفتم کلکسیونی هرپا دیگه تو هنده هر مدلش رو میخواید ببینید ببینید به هر شکلی چرا چون یه زحمتی کشیده چیزی گیرش اومده اما اونی که سلمان داره این نیست اونی که ابوذر داره این نیست اونی که مقداد داره این نیست اونی که جناب عویس قرنی پیدا کرده این نیست اون چیه میگه خدایا خوب دقت بکنید امیر فرمود عبادت کنندگان چند دستم؟ سه دست عبادت به تمعه بهشت این عبادت تاجر پیشگانه عبادت از ترس جهنم عبادت بردگانه عبادت برای خود خدا اگر من ذکر میگم برای اینکه این قدرت رو پیدا کنم این قدرت رو پیدا میکنم دیگه لقای حق ندارم خوب دقت بکنی چی عرض میکنم؟ اگر نماز من برای این است که در کاخ بهش سکنا پیدا کنم انشاالله بقیه شرائطشم دارم نهایتش اینه که خدا به من بگه بیا برو اینم بهش نمیم کاخ مال تو اما امیر المومنی این پله بالا نیست چون من نماز برای این خوندم که کاخ داشته باشم. حالا اگر من ذکر میگم برای چی؟ برای این که من قدرتی پیدا کنم از مافض زمی رو شما به شما خبر بدم پس من مطرحه میخوام من قوی بشم این نیست اون تکاملی که ما در فرهنگ عبادی اسلامی داریم خدا یاشتی خیر بده به یکی از استادایی که یه وقتی ما خدمتشون رسیدیم شهرمونم درد میکرد بچه بودیم خیلی بچه از حالا آن ذکری به ما بده وردی به ما بده ما از یه قدرت های چیزی پیدا کنیم آخه یشون فرمودن مثلاً چه قدرتی؟ کفتن مثلا ما بعضیا میبینیم آتش رو با دست میگیرند دستشون نمیسوزه. حالا خودش مرد عجیبی بود. من با کماله. دیم با کم این یک خب این کار که کار خاکندازه. ما جا خوردیم اول که چی میخواد بگه چرا داره سبب کی میکنه؟ قرد. بعد فهمیدم حالا که انارض بکنم خب این کار خاکنداز میکنه. گفتم خب بعضیا هستن اینجا، اون وارد خبر میدن. که خب به اون ببین چه خبره. بعد که یه کمی ما رو نشون گفت عزیز من اگر اومدی ذکر بگیری ورد بگیری ریاضت بکشی که بتونی در جمعش ادعا کنی من از اون وره دیوار خبر دارم من مدره از این طریق شیطان داره بیچارت میکنه به یکی میگه برو شراب بخور بیچارشو به یکی میگه برو دزدی کن بیچارشو به یکی هم میگه آقا سی سال ذکر بگو تا بعد از سی سال بیام بگم دیدی محلان درام اون وره دیوارو خبر میدم من اینا نیست تمام عبادت برای اینه که قربتن الالله قربتن الله قربتن, قربتن الالله باها کسا حالا بحثشو بازم از رحم می به این جهت اگر کسی میخواد قرب خدا پیدا کنه از سلاطم اعراج المؤمن روزه رو اومدن گفتن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پس ذات اون عمل بگونه ای که او معین کرده این وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام همه نوشتن هیچ تردیدی که روش نیست وقتی که شمر اصر تاسوعا اومد خاص حمله کنه کار یک یکسره کنه ابی عبدالله علیه السلام فرمودن یه شب دیگه به ما مهلت بدید فرمودن چیکار کنی نماز بخونیم قرآن بخونیم که این تعویر رو همه مقاتل داره میگه اون شب اگه از اطراف خیام عبی عبدالله و یارانش رد می شدید تعویر اینه مثل کنار کندوی زنبور اصل که مخاید رد بشید که وزوز زنبورا تو همدیگه پیچیده فضا رو پر کرده زمزمه قرآن و مناجات اصحاب عبی عبدالله فضا رو پر کرده بود عبادت رو این همه به ما تأکید کردن نماز رو این همه به ما تاکید کردن روزه رو این همه به ما تأکید کردن یک بر میگردم آقا مقیده به واجبات شدن عجیب تأثیر داره دو از حرام به شدت ترسیدم قاطعانه خدمتون بگم نمیدونم خدا میدونه سختمه اما چه بکنم دیگه حالا یه آدم احساس وظایفی میکنه اینا رو بی زحمت خدمتون نمیگم بی مطالعه خدمتون نمیگم هرکی بخواید ریاضت بکشید؟ هرکی بخواید ذک ورد داشته باشید که من اصل ذک ورد و ریاضت رو رد نمیکنم اشتباش حریم همه رو باید در جای خودش نگه داریم. اما دارم طله ها رو ارز میکن. هر چه زک داشته باشید و هر چه ریاضت بکشیم یک گناه خدا را مرتکب شدن اون تعالی و رشد نفسی که خدا برای ما خواسته اون چنان ما را به زمین میزنه ولو از این طرف بنده اراده بکنم الان مثل خیلی از مرتازا بگم لیوان از اینجا پاشو برو اونجا زیر شیر آب توت پر بشه برگرد بیا اینجا و این کارم انجام بدم این ممکنه ولی تعالی پیدا نکرد اجازه بتید روایت براتون بخونم کتاب محجت رول بیزا از مرحوم الله محسن فیض جلد سه صفحه دویست و سه حدیث از پیغمبر من اکلال حلال اربعین یومن نورالله قلبهو کسی که چهل روز بتونه حرام نخوره حلال بخوره من اکل الحلال اربعین یوم. چهل روز خود چه کنترول کن یه گناه حرام نخوره که حالا با احادیستی کنار هم نور الله غلبه خدا دلش را نورانی میکنه و عجرا ینابی الحکمه من غلبهی الى لسانه چشمه جوشان حکمت رو خدا از قلبش به زبانش جاری میکنه بعد مرموم الله محسن در همون جا این آیه که سوره مؤمنون رو هم میاره با این حدیث با هم جمع میبنده و نتیجه میگیره میگه در سوره مؤمنون آیه پنجاییک داریم یا ایها رسول کلو مند و وعملو صالحا و عملو سالحاً با کلومن تیبات چه مناسبتی داره یعنی وقتیشون این استنبات رو میکنه اگر شکم از پاکی ها پرنشه توفیق عمل صالح حاصل نمیشه بذارید از آقامون ابی عبدالله براتون بگم شنیدید روز عاشورا مام حسین وقتی خطبه خوند برای اون مردم کوفه اون آقا منبری مام حسین خطیب مام حسین بیانات بیانات امام حسین مگه نمیگم سخن از دل تو برخیزت بر دل میشیند سخن امام حسین از دل بر نمیخواد چرا تو دل کفی آسر نکرد خود امام حسین اینجا چی میفرماد؟ وقتی هرچی خطبه خون اینا سخنگ برداشتن جواب حضرت رو بدن حضرت فرمودن لقد استحوز علیکم و شیطان فانساکم الله العظیم تبلکم لما توریتون وقد ملعت بطونكم من الحرام دیوان اب بهتر از سیم از حرام امام حسین میگه استغفر و علیکم الشیطان آقا شیطان بر شما غلبه کرده دل شما رو شیطان پر کرده ان ساقم ذکر الله العظیم ذکر خدا را از یاد شما برده یاد خدا را از یاد شما برده طب لنکم وای بر ش... من عت بطونکم من الحرام دلای شما از حرام، شکمای شما از حرام پر شده. یعنی کسی که حرام تو شکمش باشه، دیگه امام حسینم سرش نمیشه. یعنی این مردم ندیده بودن پیغمبر امام حسین چجوری معرفی کرده. بابا حرام چش رو تیره میکنه. رضا اگر کسی میخواد سیر و سلوک معنوی داشته باشه، میشه از حرام اجتناب نکنه، سیر و سلوک معنوی داشته باشه میشه اصلا. اینس یعنی منطقی به نظر نمیاد. چه کسی بهتر از خدا بعد از خدا پیغمبر خدا بعد از پیغمبر جانشینان به حقش دوازده معصوم علیه مسلام چه کسی بهتر از اینا میتونه سیر سلوک به ما نشون بده خدا تو سوره مؤمنون آیه پنجاب و یک میگه یا ای هر رسول رسولانشو داره مخاطب قرار میده کلونت تیبا و عملو صالحن حیبات رو مصرف کنید تا عمل صالح داشته باشید. پس یکی از جنبه های عملی که برای ما لازمه اجتناب از حرام واقعا ترسیدن از حرام لذا روایات در این زمینه در دو طرف زیاده همه از این طرف آقا حلال آقا حلال آقا حلال آقا لغمه حلال آقا لغمه مثلا خیلی از اونهایی که حتی تو سیر سولوک ها چله می گرفتن مثلا می اومده به طرف می گفته آقا شما به اندازه غذای چهل روز حاضری به من هبه کنی من به پول خودم شبه دارم هبه طرف رو می گرفت می گفت به اندازه لباسی هم که احتیاج دارم هبه کنی دیگه این چهل روز غذایی که من می خورم شما به من هبه کردی لباسی که پوشیدم شما به من هبه کردی که لاقل در کنار اون ذکر این مقدمات رعایت شده باشه. اگه نشه گاهی اینجوری میشه گفت مدت‌ها دنبال استاد راهنما میگشت یه دعایی رو ذکری رو مکانی و زمان خاصی انجام بده تا به یه خواسته ای برسه که خواستش ملاقاتی که از اولیای الهی بود بهش گفتن چهل روز <تصفح> همین ساعت معین <تصفح> این ذکر رو در این قسمت حرم امام رضا علیه السلام شروع و چشم رفت چهل روز مشهد مجاور شو. اون ساعت معین میرفت تو حرم امام رضا علیه السلام از یک ساعت دو ساعت قبل میرفت که اون مکان خالی بشه که این ذکر با تو اون مکان begin راز داره اونجا می نشست این ذکر رو می گفت روز چهلم دو سه ساعت قبل رفت حالا امروز باید یه ولی جیرو بش نشون بده اومد دید که یه نفر اونجا نشسته هرچه نشست که اون از اونجا پاشه دید پا نمیشه آخری خسته شد عصبانی اومد بهش با یه تندی و تنه زدن و چه بالقل اون از اونجا بلند کرد نشست اونجا ذکرش شروع کرد ذکرش که تمام تو چیزی ندید خیلی نگران شب بهش گفتن اون کسی که بود ببینی همون بود که بلندش کردی اما تو اون آمادگی که بتونی یعنی چی؟ یعنی گاهی از کار گاهی اوراد گاه... یه چیز دیگه در کنارش در میاد باید با شرائط تو باشه شرط اول انجام واجبات هست شرط دوم از حرام ها اجتناب کردن لذا گفتن من اخلصه لله اربعین سباحن جرطی نابی الهکمه من غلبهی الالسانه که حافظ میگه شنیدم آرفی اهل یقینی همی گفت این معما با غرینی که ای مثلا آب شراب گه شبت صاف که در شیشه بماند عربعینی میگن آقا حافظ جدن شراب میخورده ها میگه تو شیشه چه ار روز هم یه گوشه و بیچاره حافظ شنیدم آرفی اهل یقینی همی گفت این معما باقرینی این شراب را آسولا نی و می در اشعار کنایه است که از نظر ابجد می میشه چارده چارده اشاره به مقام چارده معصومه روحی که در ما هست یک تجلی از نور چارده معصومه و این نی که تشبیه شده یا می یعنی اون تجلی مقام ولایت که روح ما که بحث مفصلی در جای خودش داره این جهام جز به دید من اون بحث نشم مشکل درست می‌کنه برای عموم اما کنایش اینه که اگر تجلی ولایت در ما مثل شعاع خورشیدی که به خورشید متصل بشه این تجلی روحی ولایت که در ماست اگر ارتباط با اولیای الهی شد این مثل قطره است که به دریا متصل شده قطره قطرس اما اگر به دریا متصل شد قطره دریاست گرچه قطرس اون بحثای یا شکل صحیح خودش که در جای خودش باید توضیح داده بشه اما حالا اجمالاً این مقدار میخوام خوام کنم اگر گفتن من اخلسا لله اربعين صباحا جرت ينابيع الحكم من قلبه الى این بات خودش رو از حرام پاک بداره اینا رو خدا را شکر خدا را شکر که تو زندگی ما قرار داد ما اصلا دیدیم که مقید بودن به خدا قسم اینی که میگم به چشمم دیدم خیلی بچه بودن خدا خیلی به ما لطف کرد که اینا رو به ما نشون داد. در محضر یک بزرگی که خدا آیش رحمت کنه خیلی ها به او اظهار ارادت میکردن سال این بزرگ پاید کرده تابستانی بود ادهی از اهل درکها ها خدمتیشون بودن ما یه بچهی بودن به طبع بعضی ها در خدمتیشون توی روستایی بود قرار شد که از اون روستا گوشتی تهیه کنم. برن یه امامزادهی به فاصله چند کیلومتری اون روز بود اون روز رو در اون امامزاده باشن تا غروب و این استاد یه چیزایی به ها گرداشت و اونجا تعلیم بده توی ده کمجوری رد می شدیم گوشتی از غصابی ده خریدن و رفتیم اونجا یه آبگوشتی بار گذاشتن و موقع ظهر یه کارگری توی مزرعهش اونجا مشغول بود یونجه هم بوداش یونجه میچید. این آقا گفت که سفره که بعد از نماد ظهر از سفره که گذاشتن گفت یه آقا رم صدا بتارید سفره یه لغمه ایشون خورد این آقا رسید تا نشست گفت امروز تو ده دعوای عجیبی شد گفتن چطور؟ گفت بله یه گوسفند دوزوی بود این گوسفند دزدی رو صاحبش معلوم شده بود اومده بود داشت دعوا میکرد غصاب میگفت من که گناهی ندارم خریدم اون صاحب اصلیش هم بگویم این گوشت منو است کسی فروخته پیدا کنین معلوم شد این گوشتی که ما خریدیم ما شرعاً که برامون اشکالی نداره ما از بازار خریدیم سوق مسلمه اما در واقع این دزدی بوده خدا میدونه من یادم نمیری صحنه به چشمم دیدم دیدم این مرحوم همجور که نشسته بود چشما شد دوخت بالا رنگ زرد شد حال بد یک قیافه گفتم الان داره سکرت میکنه عظمم استفراغ کرد زف اون طرفدار برگردم. من بچه بودم ولی فضول بودم رفتم خدمتیشون گفتم چی شد گفت که من سعی کردم حرام نخورم من اون چی که در توانم بود دقت کردم تا اینجا به من گفتن اینجوریه دلم شکست گفتم خدایا آنی که در توان من بود من رعایت کردم این که در توان من نبود تو لطف کردی این کارگر و فرستادی که من بفهمم نخورم اما یه لغمم نمیخوام تو بدنم بمونه انایت کرده سفره کردم برگردوندم این لطفه ها رو خدا میکنه منتها ما جدیت داشته باشیم از حرام به یکی از بزرگان گاهی با ما شخی میکرد میخوایی ذکر به دیاد بدم بیای تصویر رو بگیر از شخی میکرد توی وادی میگو بله ذکر بگو مال خودم مال خودم مال مردم مال خودم بعد دبین رو کجا میرسی منی که این احتیاطات رو وقت حرام که میگم اجتناب کردن. حالا حرام اجتناب کردن. آقا یه جمله بگیم دل کسی رو بشکنیم حرامه در مسیر تکامل معنوی اینا حرفا یه مقدار که باره زل همدل دیگه ما اینشالله نمیریم غذای دزدی بیاریم تو خونهمون انشالله قشه در معامله نداریم تا این مقدار امام سلام السلام رد می شدن روز دید میورو طرف آورده در یه جای گذاشته که نور مستقیم بهش میخوره حالا برق نیبود چند تا نورافکنم رو روشن کنن آبم بهش بپاشن که جلوه بیشتری بکنه حضرت فرمود که این قشه در معامله هست گفت چطور گفت باید در یه جایی بذاری که در نور طبیعی خودشو نشون بده چون ممکنه در آخر این تابش خورشید جلوه بیشتری بکنه این لغمه حرامه تو داری میخوری اون وقت بعضی وقتا میگن آقا تزکیه نفس تکامل تعالی رشد بالا رفتن گفتی ترم کلاس رفتم چون حقوق تدریس داشتم چون حقوق دانشگاهی داشتم چون حقوق مدرسهی داشتم حساب کردم در طول یک ترم چقدر تأخیر دارم تو کلاس گفتم آقا من اینقدر به شما بده کارم حاضرید بیاد بشینید من با شما بحث کنم. حاضر نیستید من تو کلاس میشینم برای که من انقدر بده کارم چون اگر حرام سقط در اینه که بنده شب یه باشکی نقلی بزنم توی منزل شما جنسی رو به برم یا شبکه دزدی درست کنم گاف صندوق حجره شما رو بشکنم پول ببرم خب حرام حرامه دیگه آقا گفت یکی از گناهان کبیر که ما گناه سغیره رو کوچک حساب کنیم یه جمله بگم دل کسی رو بشکنم برخوردم تو زندگی خانوادگی به صورتی باشه زن و بچه من از من در فشار باشم زنم شوهرم و از خودم در فشار نگهدارم فرزندم دل پدر مادرم و بشکنم یا گاه یک آه مادر میکشه پنجاه سال ذکر میگی اثر نداره خدا می دونه اینا رو من سننم زیاد نیست ولی بزرگانی رو دیدم که یاد دادن دیگه اینم به برکت شب‌های ماه رمضان از اون دارین با هم حرف می‌زنیم ما چهار سال اینجا داریم بحث می‌کنیم از این حرفا کمتر از منشنیدید اما اینا رو دارم عرض میکنم روش حساسیت نشون بدید آنی را که خدا گفته است ترام بترسیم از او اثراتی داره بیچارمون میکنه اگر من میخوام تعالی پیدا کنم یک واجبات خدا را مقیّد دو حرام خدا را بترسم و اجتناب کنم به خود خدا قسم وعده داده خدا و امام عصد علیه السلام به ما وعده داده ما اگر این رعایت ها را کردیم چنان کمک به ما می رسونم. چنان امداد غیبیشون شامل حال ما میشه یه لقمه حرام میخواد از گلو بره پایین یه معمول میفروشه به صورت اون کارگر بیاد سر سفره بشینه بگه این شبهه ناک یعنی چه شبهه ناکه دیگه ناک میکنم این شبهه ناک حالش به هم بخوره برگردونه این زمینهای تاییدات الهی است اما خدا که همه رو دوست داره چرا این تاییدات الهی رو برای یکی میکنه کنه برای من نمیکنه کنه خب من نمیخوام من ندارم پس واجبات رو دقیق حرام رو بترسیم و اجتناب کنیم و حرام رو منحصر نکنیم به چهار تا رشوه و دزدی و ضروق و زناب و در این حد نه خیر حرام خدا خیلی گسترده اون چرا خدا گفته انجام نده بگم چش وقت این روایت رو دقیق بکنید تا اینجا دوتش رو توضیح دادم الامور سلاسه امور ستوس امرون بینون فی فیوتبه امر بینیست از نظر ارزشیش که این باید تبعیت بشه یعنی حلال و امرون بینون غیهو و امری است که بینه که این زشت این ناپسنده باید از او اجتناب بشه و مشتبهاتون بین زاله. اما یه چیزایی بین این دوتاست یه مقدار شبهه داره یه مقدار جای تردیده این مثل موردی که من مثال دادم این گوشت گوستفندی که اینجا پیش اومد هی شبهه داری حرام که نبود اینکه <تصفح> بر مبنای سوق مسلم خریداری شده <تصفح> اگر کسی حرام خدا را خیلی مقیده و حلال خدا را خیلی مقیده در امور شبهناک پرهیز میکنه خدمت یکی از بزرگان که یه وقتی به بعضی جوانا درسی میداد اصراری باز بود بر شیر و سلوک فرمود پنج شرس اولیه رو به من قول بدید من بقیه شروع شما میگم. گفت چی؟ گفت یک همیشه واقوزو بودن دو واجبات رو دقیق مغیر شدن سه محرمات رو از اجتناب کردن چهار از امور شبهنات پرهیس کردن این امور شبهنات بعد یادم این مثال ایشون برای ما میزن میفرمود مثلا شما الان از تهران عرکت کردید مقاید برید قم. خیلی ام گرسنه‌تونه میل به قظام زیاد دارید شبونم نخوردید دیشب شامم نخورده بودید الان ظهرم خیلی دلزدی جلوی قهوخونه ای توقف کردید خب سوق مسلمه امر بر یعنی اصل بر اینه که پاکن تمیزن ان شاء الله قضاشم حلاله شما هم نشستی قضا بیارن برای شما میگه آقا چی دارید مثلا میگه چلو قیمه دارم شما خیلی به چلو قیمه علاقه دارید دلتونم می‌خواد الان یه چلو قیمه براتون بیارن. طرف هم چلو قیمه رو میاره تا رو میز شما می‌گذاره می‌بینید اینجا دستش بریده از خونیه این کاسه هم که گرفته یا این پشت خوابه هم که گرفته شما یقین ندارید این خون چکید توی این قضا چون یقین داشته بوشید که نجسه نباید بخورید اون میشه امریکه بیانه که غی داره یا نباید انجام بدید اینجا شبهه قویی برات ایجاد میشه این بی احتیاطی کرد چون وقتی هم بهش گفتم آقا اینجا خونیه اینجوری کرد و بقیه وشخابا رو برداشت. این نشون میداد اما دقیقی نیست. پس این غذا جای شبه هست شما میگی من سفارش دادم، آورده پولش هم باید بدم. دیشبم که شام نخوردم، ظهرم که صبحم که صبحونه نخوردم. حالا ما یه چلوقیمی خواستیم بخوریم. بابا چرا انقدر سخت میگیید مسائل رو؟ انشالله پاک است. خب گای الان فرار سرار کنه. این معلومه. اما اینجا جای داره. میگه خدایا به خاطر تو من یه مقدار نون خشک امروز نخورم پول این بزارم میدم این از شبهناک پردیس کردن اون خدایی که شما به خاطر رعایت حریم او دیشب شام نخوردی امروز صغونم نخوردی حالا به شدت به غذا علاقه داری حالا نشستی اینجا میگی خدایا جای شبه هست چش من بایدی که نون خشک میسازم چیزیم نمیگم تازه به محضیم که از حالا قسم سوار اتوبوس بودم چهل نفرم تو اتوبوسم میام بیرون میگم دیدید من چقدر محتاطم بر این مبنا قذارو نخوردم و این بدتره دوباره وای از شیطان گفت الهی اشکو الیک من نفس اماره به سو خدایا به تو شکایت می‌کنم از مناجاتم هم سجاده این نفس اماره به سویی که همینجور صد هزاران دامد ای خدا ما چون مرغانی حریس و بینوا دم به دم پابسته دام نویم هر یکی باز و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای نیاز صد هزاران دام دان است اینجا حتی به گونه ای شما مخفی کن اگر مثلا فرض کنی توی اتوبوس چهل نفری بودی سی و نه نفره دیگه دیدن قضا آورد جلود نخورد چی شد؟ حالا من با نون خودم رو کردم اشتحان خیلی این جور جاها این سیر و سلوکه این تسلط بر نفسه این هوای نفس رو این احتیاطات شرعیه که مطرحه و وقت اینجا انسان میتونه خیلی چیزا برای خودش ترسیم بکنه و بهان هم شبهناک رو اجتباه کردن خب حالا شبهناک این تو خوردن من مثال زدم دیگه وقت من گذشت یه ساعتم داره بیشتر میشه اجازه بدید کافی باشه انشاءالله الله فردا شب ادامه میدیم بحث و انوز نیمه کار است شبهناک در حرف زدن شبهناک در نگاه کردن شبهناک در امضا کردن شبهناک در شهادت دادن و و و و اگر بناف انسان تعالی پیدا کنه ناگرده رنج گنج مویصل نمیشود این احتیاطات مثلا به ما گفتن چندین نوع گناه فقط مال زبان، چندین نوع گناه مال چشم چندین نوع گناه مال گوشه چندین نوع گناه مال دسته اگر احتیاط در گفتار باشه احتیاط در شنیدن باشه احتیاط در دیدن باشه که <تصفيق> در بحث شبهناک دیگه مفصل میشه اجازه بدید امشب این مقدار نتیجه بگیرم انشاءالله فردا شب این رو کامل کنیم خب ما احتیاج به عمل داریم مگه میشه بیعمل این همه قرآن میگه و ول... لذینه آمنو و عمل و صالحات آمنو و عمل و ایمان به اون بحث نظری برمیگرده که اشاره کردم بحث عملیشم بهترین تز عملی رو خود خدا به ما گفته خدا در مرحله اول گفته واجب بعد گفته حرام بعد گفته شبهناک حالا این مقدار مقیده به واجب شدن از حرام هم ترسیدن و پرهیز کردن شبهناک هم براش حساب باز کردن این فعلا این مقدار کافی باشه امشب خب اونایی که توجه به این مسائل داشتن همون طوری که حدیث خوندم الله غلبه خدا دل اینها رو نورانی میکن اونایی که توجهی به این مسائل نداشتن دل تاریکه دل تاریک بشه آقا یکی با امام با پیغمبر زیر یک سخت زندگی میکنه پسی که با امام که همسر امام مجتبا علیه السلام جوده میگن بعد از این که امام رو شهید کرد فراری شده رفت معاويه بهش وعده داده بود اگر تو این زهرو به امام مجتبی خورندی شهیدش کردی من چنین چنین اینا رو بهت میدم تو رو به همسری پسرم یزید در میارم بعد از اینکه اومد در شام و گفت خب حالا چی شد وعده‌ای که دادی گفت برو بابا تو امام مجتبی رو بهش وفا نکردی وقت پسر من وفا میکنی یعنی اونام میدونستم که امام مجتبی کیه و چطور همسرش تکون نخورد دل مرده که دیگه دل وقتی الان ببینید یه وقت ما نابینای چشم سریم، نه فقیلی از نابیناهای چشم سر انقدر چشم دلشون روشنه که من با دست اونا رو ببوسم اشتباه نشاه اما مثال جسمی میزنم آقا بنده ای که چشم سرم نابیناست هر چه نور شما در اینجا روشن کنید چه تحصیلی برای من داره؟ خب هیچ حالا اگه چشم دل کور شد هر چه نورانیت ما مجتبه علیه السلام باشه. اون وقت به عنوان همسر امام برخوردش با امام بید اونم کدوم امام؟ گفت روزه بود حضرت اون روز مرتبا می فرمودن که امروز خیلی عطش ور من غلبه کرده زهر خاصی رو ما و وراش فرستده بود این زهر رو ریخ تو کاسه آبی که حضرت از او آب نوشید. وقتی امام آن رو گفتن نماز مغربشون رو خوندن این آب رو ریخ توی زرفی که آقا شما حالا از این آب استفاده بفرمایید. این آب رو که به حضرت نوشندن چه زهری در این آب بوده است که خدا میدونه با چه سفارشی که در تاریخ دار از روم آوردن چنین کردن چنان حضرت بلا فاصله اون دلدرد شدیدی که برشون آرش شد که مسئله روشن شد فرمودن خواهرم زینب رو خبر کنید یعنی انقدر حضرت مظلومان و انقدر ت میگن خواهرم زینب رو بگیم زینب سلام الله علیه اومد دید امام مشتبه از این پهلو به اون پحلومی غلته که در تعابیر داره مثل مار گزیده که آرامش نداره تا چشمش به زینب افتاد فرمود خواهرم حسین رو خبر کنه فرستادن در خانه عبی عبدالله علیه السلام امام حسین علیه السلام هم اومد برادر که با شما این کار کرد فرمود نمیگم ببینید نمیگم این اینقدر امام مظهر رحمت، اینقدر امام مظهر لطبه فرمود نمیگم اون مردمی که کور باطنن و دلها مرده است این امام به این عظمت رو در اوج مظلومیت شهید کردن فرمودن که وسیعت حضرت این بود اگر گذاشتن کنار بدن جدن قبر جدن منو دفت کنم که دفت کنید اگر نگزشتن درگیری درست نکنید منو ببرید بقیه حفظ کنید رازش چیه؟ ابلفرز علیه السلام یک دنیا غیرت یک دنیا شجاعت یک دنیا ارز ادب به خاندان زهرا سلامل علیه هاست وقتی که بدن متحر آقا امام رو و تابودای اون زمان مثل برانکابای حالا صندوق نبود که حجم بدن بالا معلوم نشه الانم تابودهای مردها در عربستان دیده ای مثل برانکاوه که بدن حجمش مشخصه لذا اگه تیر می زدن دیواره تابود نبود مانع بشه به بدن اصابت می وقتی جنازه آقای امام مجتبا رو به طرف قبر پیغمبر آوردند آیشه سوار بر آتری شد این بار اون بار بر جمل بود اومد با مروانیان جلو جنازه رو گرفت گفت نمی بدن امام مجتبا رو در اتاق همسر من که ارث به من رسیده درخ کنید خدایا چقدر بازیگری خدایا چقدر فتنه آخه چطور آدم دلش نسوزه و داد نکشه اون روزی که زهرا سلام الله علیه اومد گفت پدک من مگر نگفتی پیغمبر ارث بابی نمیگذاله امروزم که پسر پیغمبر رو میخوان درخ کنن تو اتاق پیغمبر میگید ارث شوهر منه که محمد حنفی شعری گفته در تاریخم سبت گفت آیشه اون روزی که زهرا اومد گفت پدر گفتید ارث نمیذاره حالا میگید ارث اگر ارث اس زنت شوهر ببره یک هشتم مال زنه اونم پیغمبر چند تا زن داشتن باید تقسیم بشه بین زنهاش آیا به زنی که یک هشتم میبره اونقدر میرسه که باباش توش رفت کرده ومار هم دستور داده توش دف کردن حالا به اندازه دفن یک بدن برای پسر فیضان بر بیشتر نمی روده دهف کنند. تو یه روز سوار بر شطور شدی، یه روز سوار بر قاتر شدی، بهمون نمیخوای سوار بر چی بشی؟ کوی ارکاست را من نمیشه جنازه رو کی باران آقا اول حضبلا لباس قیفش علایی در او به چوش میاد ما فرمود سعی می‌کنیم داداش ساکت جنازه رو چه کنید به طرف بقی اینجا یه جمله ای بگم. برخی از بزرگان در تاریخ اینو دارن بررسی میکنن شواهدی هم به دست اومده که چرا امام مجتبی فرمود پای جنازه من درگیری درست مکنید و امام حسین هم فرمود که سر صدا رو بخابونی زود جنازه رو ببرید به طرف بقی آقا مروانی ها نقشه کشیده بودن که از پشت سر آیشه یه تیر به آئشه بزنن آئشه رو بکشن بعد همونطوری که پیراهن عثمان درست کردن این بار چادر آیشه رو علم کنند و بگن بچه های علی زن پیغمبر رو کشتن عثمان را علی نکشته رو در جنگ جمل چه کردن با علی حالا اگر آیشه رو تو این درگیری بکشن تمام فرزندان علی و زهرا رو قتل هم میکردن لذا امام مجتبا وسیعیت کرد درگیری نه امام حسین هم فرمود که در لذا وقتی جنازه رو آوردن قبرستان بقی هفته ها چوبه دیر از بدن امام مجتبا جدا کردن امام حسین وقتی رفت تو قبر بدن برادر رو تو غرب بگذاره گفت قارت زده کسی نیست که اموالشو میبرن قارت زده منم که برادری چون تو را با دست خودم دارم در زیر خاک مخفی میکنم الله علیک یا مولای یا ابا محمد يا حسن ابن علي، اي حلمكتبا، يا ابن رسول الله، يا حدث الله على خلقه يا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و وتوسلنا و تفصّلنا الله و قدمنا يدي حاجاتنا، يا وجيحنا عند الله، اشفلنا عند الله.